به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد تو را در این سخن انکار کار ما نرسد اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گذار ما نرسد هزار نقش برآید ذکل که سن او یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کاین ها تااند یکی به سکه صاح اییار ما نرسد. دریق قفله عممر کانچناان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد ز رنج حسودان مرنج و واسق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد چونان به که اگر خاک رح شوی کس را غبار خاطری از رهگزار ما نرسد به سوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه گامگار ما نرسد